اگر اگر اینجا این درسی که خوندیم امروز یعنی اسم آله ششمین نو از اقسام مشتق بود ببینید قبل از اینکه مشتقات رو شروع کنه مصدر رو مفصلا توضیح داد مصدر باباهای سلاسی مجرد سلاسی مجرد که سماعی بودند بعدا آورد مال سلاسی مزیدو که قیاسی بودند بعد آورد مال رباعی رو باز هم بعدش آورد مصدر میمی رو بعدن آورد اسم مره و اسم هئه رو چون اینا همیشون مصدر بودن مشتقات از مصدرها گرفته میشن به خاطر این بعد از مصدر چی رو آورد مشتقا رو آورد اولین مشتقی که آورد اسم فائل بود اسم فائل در سلاسی مجرد بر فائل بود مانند نافع و ناصر و زارب و قاتل و بعدش همراه اسم فائل سیغه های مبالغه رو آورده بود که براش چند وزن آورده بود بله وزن هایی که آورده بود فعال بود مفعال بود فعول بود فعیل بود و فعیل بود اینا سیغه های بودند که فقط از ثلاثی درست می‌شدند و خیلی نادر بود که از سری درستشان از غیر ثلاثی با... بعداً در مورد عمل اسم فاعل آورده بود درس بعدی و گفته بود که اسم فاعل عمل فعلش رو انجام میده. اگر فعل لازم می‌بود فقط فاعل داشت و اگر فعل متعدی بود فاعل و مرفوم میکرد و مفعول بیری چکار می‌کرد منصوب می‌کرد و دو حالت رو آورده بود که الفلام داشته باشه تا عمل کنه و اگر الفلام نداشته بود به معنی حال یا استقبال می بود و همچنین بر برنت یا استفام یا مبتدا یا موصوف می کرد تا اینکه عمل انجام میداد. و سیره مبالغه هم عمل اسم فائلل می کرد با تمام شروعی که اسم فائل داشت. دو ظومین دو ظومین مشتق اسم مفعول بود اسم مفعول در سلاسی مجارد بروزن چی درست می شد؟ بروزن مفعول ماننده منصور مقتوب مجحود معبود الى آخر و و در غیر از سلاسی بچی وسم درست می شد؟ جان؟ بروزن شد مزاری بله در غیر از سلاسی بر وزن اسم فاعل درست می شود. اسم فاعلی که از غیر سلاسی درست می که قبلا توضیح دادیم مثلا یعلمو گفتیم اسم فاعل یارو یا رو که علامت مزاره است بر میداریم یک میم مزمون می و ما قبل آخر کسر می گیم میشه معلم اسم مفعول دقیق مثل اسم فاعل ولی ما قبل اخر اینجا فتح می دادیم معلم پس به این شکل درست می و اسم مفعول فرق دیگه با از اسم فائل داشت اینها این بود که از مجهول درست می شود. از فعل چی درست می از فعل مجهول درست می که نائب فائل داشت و از لازم درست نمی شود مگر بازدر جارو مجرور یا مصدر که قبلنها توضیح دادیم و اسم مفعول هم عمل فعل مجهول رو انجام میداد با شرایط اسم فایل. یعنی یا اینکه الف لام داشت یا اینکه به معنی حال و استقبال بود و اعتماد کرده بود به نفی و استفهام و مبتدا و مفعول این بود شرایط اسم فاعل که اسم مفعول همون شرایط رو داره بعد از اونو اومده بودیم به مشتق بعدی که بود سفت مشبهه به اسم فائل و در مورد در مورد سفت مشبهه هم گفتیم از مصدر شناسی لازم درست میشد و مثل فایل دلالت بر انجام دهنده کار میکرد ولی با وجه به شکل سوبوت یعنی اون سفت داشت صفت مشبهه دلالت بر اونی میکرد که کار انجام داده ولی به شکل ثبوتی بعدش صفت مشبهه اگر بر وزن فعیلیت علومی بود سه وزن داشت فعیلون معنید اگر دلالت برخوض مشاهدی می کرد بر وزن فعیلتون درست می شد بر وزن سی می فعیلون درست می بر وزن فعیلون درست می اگر صفت مشبهه اگر مازیش بر وزن یعنی از باب فعیله یک علومی بود سه وزن داشت اون فعل هایی که دلالت بر شادی و اندوه می کردن بر وزن فعیلون بودن مانند باجرون و فریحون اگر در حالت برع زیبایی یا رنگ می کرد بر وزن افعال میکردمانند مانند و اشب اگر دلالت بر پوری یا خالی میبودند بر وزن فعلان بود مانند اچان و ریان و صفت مشابه از باب فعولی افعولو وزنهای زیاد میداشت از جمله فعیل فعل فعال فعل فعلون و فعلون و نکته نقطه که در مورد صفت مشابه گفته بود این بود که اگر هر حر اسمی که از مجرد به معنی فائل میومد ولی بر وزن اسم فائل نمی بود اون هم صفت چی بود؟ مشبهه بود که اینو خوندیم در مورد عمل صفت مشبهه یه نقطه بسیار جالبی رو خوندیم و اون این بود که اولاً صفت مشبهه عمل اسم فائلو میکرد به خاطری هم بشم گفتن صفت مشبهه بل فاعل بخاطرش خاطرش بهش میگفتن صفت مشبهه به چی؟ بل فاعل و معمول شانه حالت داشت. معمولش چه داشت؟ یا اینکه به خاطر فاعل بودن مرفوعی بود یا اینکه منصوب می بود به خاطر شنه مفعولیت اگر معرفه بی بود اگر معمول چی می بود معرفه می بود و یا این که منصوب می بود پس یا مرفو می بود خاطر چی نقصش اون موقع چی بود فائل مفضلیت. یا منصوب می بود خاطر چی مفضلیت. شبه مفهولیت ولی در این حالت چی معمول چی می بود معرفه می بود چی می بود معرفه می بود, معرفه می بود؟ یا این که یا این که منصوب می بود به خاطر چی؟ به خاطر تمیز بودن یا مفعول بودن زمانی که نکره بود و علیه او علیه تمیزی یا به خاطر شبه مفعول بودن یا به خاطر تمیز بودن امکانم نکره تن اگر چی می بود؟ نکره می بود و حالت سومش این بود که به خاطر مضافن اله بودن مجرور می شود معمولش به خاطر مضافن اله بودن چی می شد؟ ماند الفیل و دخم الجسته پس این عمل صفت مشبهه بالفائل بود که چه حالت داشت معمولش یا مرفوع یا منصوب یا مجرور بعد از اون چهارمین نوع از انواع مشتقات آورده بود اسم تفضیل تعریفش و شرایطش نعریفش کرده بود که بروزن اقعال هست دلالت بر این می کرد که دو چیز با هم مشترکند ولی یکی از آن دو برتری دارد اسم تفضیل از همون فیلایی که فیل تعجب درست می شد و هر شرط داشت که در درس ها مفصل ذکر کردیم با همون هر شرط درست می و اگر اون شرطا رو نداشت اگر اسم فیلی اون شرطی رو که در باب تعجب ذکر کردیم نمی داشت چطوری اون فیلایی که شرایطو رو نداشتن و نمیتونستیم تونستیم تعجب درست کنیم کلمه ما اشده و ما اکثرة و عشباه اینا رو می آوردیم و بعدش نستر رو می آوردیم فیل تعجب درست کردیم. اینجا هم ما اشده و ما اکثرة رو می آوریم و اسم چی درست میشه؟ اسم تفصیل درست میشه ولی فرقش با اسم سیغ تعدوب این بود که در سیغ تعجب مفدری که بعد از ما احاله میومد ما اشده میومد به خاطر منس مفعول بهی میشد ولی اینی که بعد از ما اشده و ما اکسره در اسم تفصیل میاد به نخشش یه تمیز هست اینا رو قبلا گفتیم پس اگر فعلی که ما خیم از اون اسم تفضیل رو درست کنیم شرایط رو نداش، اون موقع بعد اشدد یا شبیه اشدد مقدار رمی و درست میشه. مانند مثال هایی که در کتاب آورده بود، اون مثال ها چی بودند؟ عشاقی کو اشدد حمرتان. از حمرتان ما مستقیما نمیتونیم اسم تفضیل درست کنیم. اشدد رو اشددو رو قبلش آوردیم یا تقدمان که چون سلا... سلاسی مدید هست نمیتونیم ازش اسم تفضیل درست کنیم لذا کلمه اکثر رو قبل از مقدر آوردیم بس در غیر سلاسی مجرد و اونایی که شرایط درست کردن رو ندارن به همین سادگی اسم تفضیل درست میشه اما در مورد عمل اسم تفصیل اگر در ذهنهای مبارکتون مونده باشد این رو هم توضیح داد که اسم تفضیل چار حالت داشت یکی این که خالی از الفلام و اضافه باشد که در این حالت گفته بود اسم تفضیل واجب بود که به شکل مفرد و مذکر بکار ره مانند الالم و انفع و الشمس و اکبر و الجبال و اعلى ببینین انفع و اکبر و اعلى شکل مفرد و مذکر بکار رفتند حالت دوزمش این بود که لام داشته باشه در این حالت واجب بود که با موصوف خودش مطابقت داشته باشه الولد الاکبر الدار الكبرا البقرات الکبرات. دار که معنس هست کبرا هم معنسه پس زمانی که اسم تفضیل لام داشته باشه بعد با موصوف خودش چه می داشت؟ مطابقت می داشت حالت سومش این بود که اسم تفضیل مضاف بنکری باشد در این حالت هم واجب بود که مفرد و مذکر بکار بره یعنی در دو حالت واجب بود که مفرد و مذکر بکار بره زمانی که اسم تفضیل الف نداشت و مضاف نبود دو زمانی که مضاف بود اما بنکری مضاف بود در این دو حالت اسم تفضیل واجب بود که هم مفرد باشه هم مذکر و چهارمین حالتش این بود که اسم تفضیل مضاف به معرفه ای باشد که در این حالت هر دو حالت جایزند میتونیم با موصوفش مطابقتش بدیم یعنی اگر موصوف مؤنث بود اسم تفضیل مؤنث بکار بریم اگر موصوف مصنع بود اسم تفضیل مصنع بکار بره اگر موصوف جمع مذکر بود اسم تفضیل جمع مذکر بکار بره اگر موصوف جمع مؤنث بود اسم تفضیل جمع مذکر بره یعنی در این حالت زمانی که اسم تفضیل ما الف نداشت و مضاف به معرفه بود در این حالت هم می توانیم. با موصوف خودش تکبیر داشته باشه و هم میتوانه مفرد و مذکر کاربر این حالاتش بود اما عملش در مورد عملش بگویم که اسم تفضیل زمیر مستتر رو مرکو میکنه مثلا در ترکیب انفعو ال ال من المال الالمو می‌گیم مبتدا انفعو میشه خبر انفعو چون اسم تفضیل هست زمیر مستتر هو درش که فائلشه مستطر هست من المال که هم یارو رو متعلق متعلق به انفعو هست بعدش رسیدیم به این که پس اسم تفضیل زمین رو رو مرکو میکنه و و این هم قایده بسیار نزمیست و اسم ظاهر رو قیاسا مرکو نمیکنه. مگر به این شرط که ما بتوانیم سر جای اسم تفضیل فعلی رو که به معنای اسم تفضیل هست بیاوریم که در بله اون موقع معنا به هم نخوره که در بحث آورده بود مثلا ما به جای ما من اردن ادودو فی هل قطنو منهو فی ارد مصر بتوانیم بگوییم که ما من اردن یدودو فی هل قطنو کجودتیهی فی مصر و حاضر متفردون میگه و این و اینی که اسم ظاهر رو مرفو بکنه این قاعده متفردی میشه چی زمان؟ کل ما به یت با اوفی بعد نفین. هر جایی که اسم تفضیل بعد از نفی یا شببه نفی یعنی بعد از نتی یا استفام یا نهی بیاد این قعد متررک میشه. یعنی میتونه این ارا میشگی بشه. ولی چه زمان زمانی که بعد از نح نحی و استفام بیاید؟ بله. اون موقع است ظاهر رو میکنه زمانی که بعد نهی و نفی و نهی بیاد ولی مرکوش دیگه ازنبی هست منظور این هست که به مرکوش زمیری متصل نیست که به موصوف بر بگرده و و مفضلاً علی نفسیه به اعتبارین به دو جهت به دو اعتبار برخودش برتری داده شده است یعنی اون کلمه از دو جهت بر خودش داده شده است برتری ما من ارض ادودو فيها القطن منه فی ارض مصر یکی برتری دادن پنبه بر خودش به اعتبار سرزمین مصر و به اعتبار سرزمین های دیگر از دو جهت بر خودش داده شده است برتری داده شده است لذا اینو در کتب دیگر مشهور هست به مسئله کحل اینو شما انشاءالله در قطرون ندا خواهید خون مشهور هست این مسئله ها مسئله دادن اسم تفضیل اسم ظاهر رو مشهور هست به مسئله کحل کحل به معنی سرمه میشه ولی چون مثالش در کتب نهوی همین کهل و میاره مثال مشهوری هست بگیم خود قائده هم مشهوری به کهل شده اینو انشاءالله خواهید خون البته سوحیل خونده میتونید درش بپرفید اگر تو زهن مبارکش باشه بعد از اون پنجمین اسم مشتق اسم زمان و مکان بود خب در مورد بقیه آورده بود که عملشون یعنی ما تاینده چهار تا رو خوندیم اونها چی و چی بودن؟ یکی اسم فاعل بود اسم یکی اسم مفعول بود اسم تفضیل بود, بود. سیغه مشابه صفت مشبهه بود اون تا عمل داشتن فاعل و مرخوب میکردن و اونایی که مفعول بهی داشتن مفعول رو چی پر میکردن مرخوب میکردن. ولی, ولی ولی ولی این دوتا اسم زمان و وکان و اسم علی اینا عامل اینا فاعل و مفعولی متوجه شدید؟ به خاطر این در این دو درد ما ببینیم که عملشون ذکر نشده. اونا نه اونا یه درستی میخوندیم که چطوری درست میشدن. یه درستی میخوندیم اگه حالاتی داشتن رو بیان میکرد. یه درستی عملشون بیان میشد. ولی اینا نه. اینا فقط چیشون بیان میشه. فقطمون چطوری درست میشن. خب الان رفتیم به اسم زمان و مکان. اسم زمان و مکان در اسمی هستن که از متدرک درست میشن. دلایل بر زمان و مکان فهم میکنن و اصلاتی، اصلاتی. بر وزن یا مفعل درست میشوند. اگر فعل ناقص بود یا مزارش بر وزن یفعلو و یفعلو بود در این حالت اسم زمان مکانش بر وزن مفعل هست ولی اگر فعل صحیح الاخر بود و مزارش بر وزن یفعلو بود مزارش بر وزن چی بود؟ مانند یزربو یا زمانی که مثال بود و صحیح الاخر بود در این دو حالت بر وزن درست میشان معنی در مورد و موقف و مذرر در مذرر بخاطر این بر وزن هست که مزارش یزربو هست بر وزن یفئلو هست و در مورد هم بخاطر این بر وزن مفئل هست که مثال هست و صحیح و الاخر و بریم و در غیر سلسی مجرد بر وزن اسم محول درست می شود. مثلا اسم زمان و اسم مکان یفتقدم و مستخدم هست اسم زمان و مکان یعلمون و است. بله ما چیز رو داشتیم که با هم مشترک بودن سیغه شد اسم زمان اسم مکان مصدر میمی و اسم مفعول از غیر سلاسیه در غیر سلاسیه مجرد اینا بر وزن همیشون برنتای اسم مفعول بودند مصدر مینی زمان و مکان در غیر سلاسی مجرد و اسم مفعول در غیر سلاسی مجرد همیشون برنتا بودند اسم مفعول همون بال باله بر اسم مفعول بودند که همیشون گفتیم یک مین مذمومی به جای علامت می میاوردیم مثلا یه تخدمه و مصدرمی particulars ازشی اسم زمانش میشه مستخدم. اسم مکانش میشه مستخدم و اسم مخبولش همیشه مستخدم از کده تشخیصش بدیم؟ از قرینه قرینه در جمله سیاق و آخرین یعنی ششمین مشتق اسم آله بود اسم آله هم از مثل رسولاسی متعدی درست میشد دلالت بر چیزی میکرد که فل به واسطه آن انجام گرفته است اسم آله سه داشت همشون سمایی بودن مفعال مانند مفتاح مفعل مانند مبرد و مفعلتون مانند مکنستون اینها همشون اسم چی بودند همشون مشتقاتی بودند که گفتیم اگر یاد از هان مبارکتون کار بکنند که گفتیم بعضی از اینها عمل بودند و بعضی از دیگر مرفوع و منصوبی نداشتند کدوم نداشتند اسم آله و اسم مقای اسم و اسم زمان و مکان ولی یه نقطه دیگه اگر یاد تون بیاد اینا رو بعد از مصدر آورده بود به خاطر اینکه مصدر از مشتقات نیست ولی مشتقات از مصدر گرفته میشان شباهت بعدی اسم فاعل که بعد از اسم مصدر آورده بود این بود که اسم مصدر عمل داشت و اسم فائل هم چی داشت عمل داشت خب اینو هم معنی کنم ظاهرا معنیش برای شما واضح نبود قدت جماله بالمقود مقودو میدونید معنیشتی هست افسار هست یعنی قادة, قاده قاده قاده قاده قاده تا قدنا قدت قدت قدت ما قدت قدت قدنا این فعل فعله عدوات هست مثل قولنا قولتو قولنا قدتو قود نا یعنی مهارش کردم اسب رو با احصار اسم عاله هست مکنسه هم بمانی چی بود؟ جارو هست کنس الخادم و الارضه بالمکنسه طارق الحداد و الحديد بالمترغه کوبید احنگر احن ربا چکوش مترغه چکوش هست لئی قد تفل و تعاله خورد تفل غذا رو با قاشق با آله غذا خوردن اینا نقطه های ضروری بودن که در یک درس برای شما جمعشون کردم و این درس هم در بیست و یک دقیقه زبط شده انشاءالله میتونید گوش بکش